بسم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون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 وعد الله لا يخلف الله وعده ولكن اكثر الناس لا يعلمون يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الاخرة هم غافلون سوری مبارکی روم هست و اسوعهایی هست که در مکه مکرم نازل شد. هشتاد و چهارمین سوره قرآن کریم هست. در اواخر زندگی مکی مدتی قبل از هجرت این سوره نازل شد و این سوره نامگذاری شده به نام سوره روم چون ذکر روم و کشور روم که اون زمان یکی از عبر بود در ابتدای این سوره آمده تصمیت الکل به اسم الجز سوره را نامگذاری کردم به نام بخشی از سوره ابتداعاً مناسبت این سوره را و ربط این سوره را با سوره مبارکه انکبوت ارز می کنم شما در سوره انکبوت خاندید که احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمن آ و هم لا یفتنون که مطلبش این بود انواع امتحانات انواع آزمائشات انواع مصیبت ها برای اهل ایمان میاد باید تحمل کنند باید صبر کنند باید بر مشکلات شکیبا باشند صبور باشند حالا در سوره روم می که همیش مصائب نیست همیش مشکلات نیست همیش رنج نیست و یوم اذن یفرح المؤمنون یعنی گاهی میاد که مؤمنان خوشحال میشن میشند مؤمنان شاد و مسرور هم میشند منظور اینه که گاهی اللہ عزوجل یسر هم میاره گاهی روزی میاره گاهی فتح و موفقیت میاره پس اون که در سوره انکبوت گفته شد مشکلات میاد در سوره روم نوید هست خوشخبری هست مجده هست که تنها مشکلات نیست گاهی خوشی ها هم هست گاهی از کنم که فتح و پیروزی هم هست قبل از اینکه این آئی خدمت شما ترجمه بکنم و تشریح بکنم آیاتش را اولا شعن نزول را عرض می کنم که در واقع این آیاتی پس منظری دارد یک شعن نزولی دارد جریان اتفاق افتاد اون جریان این بود که در زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم دو ابر قدرت بودند یکی فارس بود که همون ایران و یکی رومی ها بودند رومی ها فارس اهل فارس خب مشخصه که کدوم مناطق بودند مناطق شرقی مناطق فعلی خود ما از عراق گرفته تا ایران تا افغانستان تا آذربایجان ارمنستان خراسانات بلق و بخاره همین ها جز فارس بود بسی اروسی بود و دوم روم بود که مرکز رومی ها قسطنطنیه بود اون زمان استانبول امروز مرکزشون اونجا بود اما منطقه بسیار وسیعی را از شام و مصر گرفته تا اروپا این تحت سیطره رومی ها بود از نظر مذهبی رومی ها مسیحی بودند نصرانی بودند و فارسیها ها مجوسی بودند آتش بودند به تعبیر دیگه خدمت شما عرض کنم که رومیها با مسلمانان نزدیکتر بودند چونکه گرچه رومیها اهل شرک و اهل تسلیس بودند اما خودشون را اهل کتاب میدانستند معتقد به پیامبری ایسا بودند و بر دین آسمانی خودشون را میدانستند از این جهت با مسلمانان وجه اشتراک داشتند اما فارسی ها چون آتش پرست بودند اونا وجه اشتراکشون با مشرکین مکه بود با پرستانی مکه بود بنابراین هر وقتی که برای رومی ها فتحی بود موفقیتی بود مسلمانان خوشحال می شدند اگر برای فارسها می شد و برای ایرانی ها می بود مشرکین خوشحال می شدند چون به نوعی با خودشون هم دین و هم مسرک میدونستند. تا اینکه در همون زمان رسول الله صلی الله علیه وسلم جنگ و اتفاق سختی بین فارس ها و رومیها اتفاق افتاد و رومی ها شکست خوردند جناش شکست خوردند که هزاران نفر را از دست دادند عقب نشینی کردند این شکست رومیها باعث خوشحالی مشرکین مکه شد خیلی مشرکین مکه شاد شدند و به مسلمانان گفتند که انها را آن‌ها را شکست دادند ما هم شما را شکست می‌دهیم ما شما را از بین می‌بریم بالاخره از این اونها بدفالی گرفتم بر این که مسلمان ها همین طور شکست می خورند تا اینکه الله اللہ عزوجل این آیات را نازل فرمود در این آیات هست که روم شکست خورد در البته این, این جنگ در منطقه‌ای بود که با سرزمین عربها نزدیک بود فی ادن الارض میگوین نزدیک اردن بود این اتفاق و این جنگ که اردن جز شام هست و شام جز رومی ها بود اینجا رومی ها شکست خوردن اما اللہ تعالی وقتی که مشرکین شاد شدند و خوشحال شدند اللہ تعالی فرمود که این رومی ها که مغلوب شدند شکست خوردند بعد از شکست خودشون پیروز میشند در ظرف چند سال بزع سنین فرمود بزع سنین از نظر عربیت بزع سنین بزع از ستا تا نه تاره میگویند از سه سال تا نه بزع هست لذا مسلمانان یقین کردن باور کردند که چند سالی بگذارد روم پیروز میشه و فارس شکست میخورد اما بظاهر این طور نبود ظاهر قضیه طوری بود که چنان شکستی خوردن که دوباره به قول ماها نمی کمرشون را به این زودی ها راست بکنن تجدید قوا بکنن دوباره توانای جنگ داشته باشند وقتی که قرآن این را گفت که بعد از چند سال روم پیروز میشه مشرکین خندیدن گفته اصلا امکانش نیست این چه پیش بی جایی هست؟ بلکه اونها هر جا بحث بود مسلمان می گفت که روم پیروز می و می گفت امکان نداره. تا اینکه حتی حضرت ابو بکر سدیق رضی الله تعالی نه چون به قرآن ایمان داشتند، به قرآن اعتقاد داشتند، با امیع خلف خلاف شرط بندی کردن اون زمان شرط حرام نبود شرط بندی کردن بر ده تا شطور گفت در ظرف چند سال روم پیروز میشه ایران شکست میخوره فارس شکست میخوره ده تا چند سال سه سال را شرط گذاشتن که هر که باق ده تا شطور به دیگری بده اما وقتی که ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہو خدمت رسول الله گفت که من با امیه چنی شرطی بستم رسول الله اشاره کرد که سی سال کمه چون رسول الله می دونست که بیضع سنین از سی سال شروع می تا نه سال فرمودن که در ظرف نه سال شرط ببند لذا دوباره این شرط را تجدید نظر کردند گفتن تا نه سال تا نه سال شرط بسته شد شطرها را از دهتا به ستا کردن صد ست شطر شرط گذاشتند که تا ست شطر هر کس باخت باید بده تا این اندازه ابو بکر صدیق اعتماد داشت باور داشت که کلام اللہ عزواجر حق است خلاصه بعدن مسئل حجرت اتفاق افتاد ارز کردم این جز سوره های مکی هست مسلمانان هجرت کردند و رفتند به مدینه منوره بعد چند سال نمشنه حدودا نزدیک به شش سال یهو روم حمله کرد بر ایران شاهر روم چنان حمله کرد که ایرانی ها غافلگیر شدند ایرانی ها را اغب زدند بسیاری از سرزمین های خودشون را از ایرانی ها برگرداندند پس گرفتند و در خاک ایران پیشروی کردند تا ارمنستان و تا آذربایجان روبه ها پیشروی کردن حتی که خود شاه ایران خسرو پرویز در خطر بود او فرار کرد و یک جای پناه برد آتش کده ایرانی ها را که معبدشون بود از بین بردند و ایران کردند و شکست فاشی برای مشرک برای ایرانی ها شد و از قضا در همین روزی که ایران شکست خورد در همین روز اینن در همین روز مشرکین از دست مسلمانان در بدر شکست خوردند یعنی هر دو پیروزی همزمان شد بیچاره امیه بن خلاف همونجا کشته شد اونی که شرط بسته بود با ابوبکر صدیق رضی الله تعالیم اونم در بدر کشته شد لاخره اون چیزی که قرآن پیشگویی کرد انجام شد بعدن ابو بکر صدیق رضی الله تعالی پیش پسر امیه پیغام فرستاد که پدرت با من این شرط را بسته باخت پدرتو همه می این شرط را قبر داشتن شرط بندی ابو بکر صدیق و امیه را پسرش مشرکین گرچی مشرک بودند اما به تعهد خودشون پایبند بودند و اگر تعهد خودشون را پایبندی نمی این را برای خودشون آر می برایشون برای شون پسر امیه بن خلاف تا شتر برای ابو بکر صدیق فرستاد و پدرم شرط را باخته اینم تا تشطر رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمودن که شطرها را تحویل بگیر و بعدا ابو بکر صدیق رضی الله تعالی نو شطرها را صدقی کرد بنابر این خدمت شما عرض کنم که این چیزی که قرآن پیشگویی کرد این پیشگویی قرآن مجید کاملا محقق شد الله تعالی می فرماید الف لام میم غلبت الروم في ادنى الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنین غلبت الروم یعنی مغلوب شد روم اهل کتاب نصارا فی ادن الارض در زمین نزدیکی بشما نزدیک ازروعات و بسرا من دوتا منطقه بودن ازروعات و بسرا اونجا که بین اردن و فلسطین بود و هم بن بعد غلبهم سیغلبون قران میگه اینها بعد از مغلوبیت خودشون انقریب غالب میشند بعد از اینکه اینها شکست خوردند غالب میشوند فی بضع سنین در ظرف چند سال در ظرف چند سال اینا غالب میشن اینا پیروز میدان میشن لله الامر من قبل و من بعد الله می که تمام امور فقط و فقط برای الله است یعنی در اختیار الله است امور در دست خدایان باطل نیست در دست شرکای شما نیست فقط و فقط به دست الله من قبل و من بعد قبل از این مغلوبیت و بعد از مغلوبیت در هر صورت کار به دست خداست و یوم اذی یفرح المؤمنون در اون روز خوشحال میشوند مؤمنان به نصر الله به نصرت خدا هم خوشحال می شوند بس این نصرت خدا چی بود؟ غلبه در بدر بود یعنی اون روز الله تعالی برای مسلمانان هم خوشحالی میاره تفسیر مدارک نوشته علام نصفی اخ از ابو بکل الحضر من زوریت اوبی حضرت ابو بکل صدیق رضی الله تعالی نهو همون جائزه را یا شرط که برده بود تحویل گرفت شطرها را از فرزندان اوبی فقال عليه الصلاة تصدق به رسول الله فرموشه ترهارا بيقين سادغيبكم دراء خدا خيراتكم وهذه آية بيّنة على صحة نبوته إن يكي أز آيات روشان بود بصحة نبوة رسول الله وأن القرآن من عند الله ودليل وازئهات كقرآن كتاب خداس لأنها أنباء عن علم الغيب چونکی این داره خبر میده از علم غیب که در آینده این میشه همون پیشگویی که قرآن کریم فرمود، اون پیشگویی محقق شد، اون پیشگویی به وقوع پیوست و كان زالک و قبل تحریم القمار، این مسئله قبل از اینکه قمار تحریم بشه اتفاق افتاده بود. على ای حال الله می‌فرماید: "وَيَوْمَ إِذِ يَفْرَحُ المؤمنون در اون روز شاد می شون مؤمنان بنصر الله به نصرت خدا یا انصر من یشا یاری می کند و نصرت می کند کسی را که بخواهد و هو العزیز الرحیم و خدا من غالب هست و مهربان هست مغلوب کردن و غالب کردن دست اللہ به بدست کسی دیگه نیست وعد الله این وعدی ای الهی از لا يخلف الله وعده الله خلاف وعدیش نمی کند ولكن اكثر الناس لا يعلمون اكثر مردم نمیدانند به دلیل اینکه اکثر مردم در اسباب ظاهری نگاه میکنند به قدرت رب نگاه نمیکنند اسباب ظاهری میگاز نظر ظاهر ممکن نیست که دوباره روم پیروز بشه ولی همه چیز به دست الله لله الامر الله بهتر داند اما مردم علمشون ظاهری هست یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا هم طور که اینجا هم بظاہر نگاه می در زندگی دنیا هم بظاہر نگاه میکنند ورای این علم پشت سر این علم اون چی که حقیقت هست واقیت هست که زندگی آخرت هست زندگی اصلی هست زندگی دائمی هست از اون زندگی غافلند از اون زندگی بیخبر هستند و هم عنی هم غافلون این مردم از آخرت غافل هستند از آخرت بی خبر هستند نمی که در آخرت چه خبر هست اولم یتفکرو فی انفسهم ما خلق الله السماوات والارض اینجا الله تعالی دعوت به تفکر میده دعوت به تدبر میده دیشان مردم خدای عزو جل قدرتی هست آسمان را زمین را خلق کرده اینا را چی را خلق کرده اینا را بیهود خلق نکرده اینا را برای بازیچهی خلق نکرده الله اینا را خلق کرده که حق را نشان بده حق را اظهار کند اولم یتفکرو فی انفسهم آیا در درونشان نشان فکر نمی کنند سر, سر را در گریبان فرو نمی برند فکر نمی ما خلق الله السماوات والارض ن يا فريد الله اسمانها والزمین را وما بينهما وما بين انهار الا بالحق مگر براي اظهار حق وأجل مسمى براي مدته موييدي وان كثير من الناس بالقائ ربهم لكافرون هم انا بيسياري از مردم هستند كه نسبت الله منكرند ملاقات الله را انکار مي كنند قبول نمي كفر مي اولم یسیروا فیل ارض الله اینجا دعوت میده میگه شما سیر کنید شما بگردید کسانی که از شما بودند قدرتمندان اونایی که منکر آخرت بودند انجام اونها نتیجه اونها عاقبت کار اونها به کجا رسید آخرشون چی شد اونها از شما یک گردن قدشون بلند تر بود از شما قوی تر بودند شما سرمایدارتر بودند از شما بیشتر بود ولی وقتی که نافرمانی خدا کردند وقتی که انکار کردند الله عزوجل به چه حال زاری آنها را گرفتار کرد اولم یسیروا فی الارض آیا سیر نمی در, در زمین فینظرو کیف کان عاقبة الذين من قبلهم ببینن چگونه شد انجام کسانی که قبل از اینها بودن کانو اشد منهم قوة آنها غوی تر بودن شدید تر بودن از اینها از نظر قوت اون پیشینی از این مشرکین مکی خیلی قوی تر بودن و في فی الارض و آثار الارد و زمین را آباد کردند آثار الارد از شکستن زمین شخم زدن در زمین که برای کاشت و برای زراعت بشکنند و عمروها و زمین را آباد کردند اکثر من ما عمروها بیشتر از اون چیزی که مشرکین آباد کردند اونا کاخ بستند اونا ساختمام بستند اونا خیلی در زمین کار کردند اما الله می فرمید وجاءتهم رسلهم بالبينات بشأن هار رسل شان پيامبران شان ہمرا با بیانات آمدند ہمرا با معجزات آمدند فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون اما انهار چون نابود شدند الله نبود که بر آنها زلم کند، الله زلم نکرد، ولكن کانو انفساهم یظلمون، اما آنها بودن که بر خودشان زلم کردند، خودشون زلم کردند، خودشون ستم کردن عذاب خواستند. عاقبتشون چی بود؟ عاقبت و نتیجه این بود که، آنها در واقع تکذیب کردند آیات الهی را. ثم كان عاقبه الذين اساءوا السوء عاقبت کسانی که بد عمل کردند عاقبتشون بد شد السوء مراد چیه بنص مراد عقوبت مراد عذاب انجام نهایی که تکذیب کردند عذاب شد گرفتاری از طرف خدا برایشون شد چرا عذاب انکذبوا بایات الله این سببیه هست اینکی آنها تکذیب کردن آیات الهی را و نسبت به آیات الهی تماسخور کردن و کانو به آن نسبت به اون آیات و حتی نسبت به ازابی کسی خدا عزّ و جل آماد نسبت به او استهزا کردن تماسخور کردن. الله یابدؤ الخلق ثم يعيده ثم إليه ترجعون بعد ازین الله تعالی دلائل رزق می فرماید دلائلی که برای اثبات قیامت هستند. ببینید در آیات گزشته ما خاندیم که عاقبت عذاب شد. عاقبت بد تمام شد. اما مشرکین قیامت را که قبول نداشتند که از عاقبت بد بترسند، از عاقبت زو بترسند. الله تعالی در ادامه دلائل را بیامیفرمد. الله میفرماید: الله یابدأ الخلق ثم يعيده اللہ تعالی از ابتدا خلق را ایجاد کرد خالق و آفریننده الله بدون الگو هم درست کرد ابتدا به این است که هیچ نقشه هیچ الگویی نبود الله تعالی بدون الگو ابتدا همه چیز را درست کرد و بعدا هر وقتی که الله بخواد دوباره برمی می یعنی خلق از بین میره می میرد ثم یعیده حالا این چطور دلیل میشه برای قیامت ببینید کسی که قدرت داره ابتداءن درست کنه اون قدرت نداره انتہا دوباره درست کنه بظاہر بار اول مشکله بار دوم که نقشش هست الگویش هست نمونش هست بقول امروزیا فرمولش هست بار دوم چی مشکل داره پس وقتی که اللہ بار اول چون همه اعتقاد داشتند همه باور داشتند که خدا پیدا کرده مشرکین هم وقتی می پرسیدی کی, کی پیدا کرده کی خلق کرده می گفتا اللہ لیسا اللہ می فرمو وقتی که ابتدا خدا خلق کرده انتها چرا نتونه خلق بکنه الله یبدو الخلق ثم یعیدو از ابتدا آفریده خلق کرده سپس بر میگرداند سپس فقط و فقط بسوی او برگردانده میشوید شما الله تعالی تخویف بیان میفرمید شما که باور ندارید اون روزی که خدا تعالی قیامت را برپا بکند، قیامت قائم بشه مشرکان مجرمان همه ناامید میشند چرا ناومید میشند؟ چونکه در دنیا باورش نداشتند بهش ایمان نداشتند میدونند که اونجا وقتی که کسی بهش ایمان داشتن نباشه برایش آمادگی هم نمیکنه دیگه اونجا میدونه که خیری برایش نیست چون هیچ نوع آمادگی و هیچ نوع برنامه ریزی برای آخرتش نکرده و یوم تقوم الساعت و المجرمون روزی که قائم میشه قیامت قائم میشه قیامت برپا میشه معیوس میشون مجرمون مج... تفسیر مدارک نوشته المشرکون یعنی مشرکان معیوس میشن همه مشرکان منکر قیامت بودن در اون روز همه ناامید هستند شاید کسی بپرسه که این خدایان مگه به دردشون نمیخورد؟ این خدایانی که برای اونها شطر می کشتند، میکشند، می کشتند، نظر و نیاز می دادند، اونا در حاجات و در مشکلات فریاد می زدند، همیشه می اینها اینا سفارش ما را می کنن، ها اولی شفاعهون عند الله، اینا شفاعت ما را پیش خدا می الله می فرماید و لم لهم من شرکائهم شفعاء، نیست برای انها از شرکایشان از معبودانشان هیچ هیچنو شفاعت کنندی وکانو بشورکائهم کافرین اینها نسبت بشورکائشان منکرمیشان میگا اسلام مارا عبادت نکر دید ویوم تقوم الساعت یوم اذی یتفرقون اللہ می فرمائد روزی کی قیامت برپا می در اون روز انها جدا می شمن از هم دیگے یتفرقون یعنی دو معنی یکی که عابدان از معبودان خدایان از بندگان دروغین خودشون هر یکی جدا میشه هر یکی نفسی نفسیه هر یکی فکر نجات خودشه و بعض احل تفسیر میگن یه یعنی اهل نار و احل جنت از هم دیگه جدا میشند و الیوم ایوها المجرمون مجرمان شما جداگانه صف بگیرید مومنان شما جداگانه صف بگیرید اینا از هم دیگه جدا میشوند خب این دومین تفسیر قوی تر است به دلیل آیه بعدی چرا جدا می شوند کجا میروند الله تعالی تکلیف هایی را روشن کرده فَأَمَّا فا الَّذِينَ آمَنُوا امنوا الصَّالِحَاتِ الصالحات اما کسانی که ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند فهم فی يحبرون آنها در باغات و در بهشت یحبرون شادمانی می کنند خوشیم دارند، خوشحالند، شادمانند، جشن میگیرند. و اما الذين كفروا وكذبوا كذبوا بآياتنا، اما آنهايی که کف کردند و تکذیب کردند آيات ما را و لقاء الآخره، آنهايی که انکار کردند ملاقات آخرت را فاولائك في العذاب محضرون این گروه در عذاب احضار میشوند این گروه در عذاب حاضر کرده میشوند اینا عذاب داده میشوند لذا به این صورت تفرقون زمدگی جدا میشوند راه مجرمین به سمت دیگه است راه مؤمنین به دیگه است فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون از اینجا ثابت شد که واقعا خدای عزوجل متصرف تنها او هست او از شریک پاک است از عیب پاک است از هر همسر و همتا فرزند و زن از همه اینها پاک است فسبحان الله بس پاکی برای الله در همه اوقات بسیاری از مفسران معتقدند که مراد از پاکی و مراد از تسبیح چون جا مراد تسبیح است یعنی شما پاکی خدا را بیان کنید مراد نماز است مراد نماز است یعنی نماز خودش تسبیح است مگر در تمام ارکان نماز تسبیح و پاکی خدا نیست سبحانك اللهم و بحمدک وقتی که شما آغاز میکنید، کنید برکومی ری سبحان ربي العظیم بسجد میری سبحان ربی الاعلا همش تصویح بس نماز تصویح است و در اوقات خاص سینجا نماز را کرده این آیه از اون آیاتی است که بیشتر درباره نمازهای پنجگانه اشاره کرده از ابن انباس رضی اللہ عنہما که رئیس مفسران است پرسیدن که در کدوم آیه بحث نمازهای پنجگانه آمده این آیه را خاندد در این آیه نسبت به همه آیات در آیات دیگه هم شما خاندید اشاراتی بود. اینجا سرایت بیشتری هست. الله می‌فرماد، فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ باقی برای الله زمانی که زمانی که شما مسح می‌کنید مسح بعد از ظهر می‌گنند. شامل نماز ظهر و عصر میشه. بعد از تا قبل از غروب خورشید این مساح است در این وقت دو تا نماز است زهر و عصر وحین تسبحون این صبح اشاره به نمازی چیه؟ فجره زهر، عصر، فجر و له الحمد فی السماوات والارض بل مساح فقط عصر ببخشید تظهرون زهر می و له الحمد فی السماوات والارض فغت و فغت برای اوست حمد اذکرنام نماز حمد تسبیح هم حم حمده الحمد لله رب العالمين ربنا لك الحمد تمام یا حمد خداست یا پاکی خداست و له الحمد فی السماوات والارض فغت و فغت برای اوست حمد در آسمانها و زمین و عشیا و عشیا عشاء اما بعضی میگن مسا بعد از ظهر را میگن مسا بعد از غروب اطلاق میشه بعد از غروب مغرب و عشاء عشی بعد از ظهر را میگن وقتی که گوسفندان را از چرا میارن اینجا اشاره به عصر است وحین تظهرون وقتی که شما ظهر میکنید نماز ظهر میرسه ما آلوسی و اندلوسی و همچنین نسفی همین نوشتن اتفق المفسرون على ان الخمس داخلتن في هذه الآیه پنج نماز در این آیه داخل است وعن ابن عباس ما ذکرت الخمس الا فيها پنج نماز ذکر نشده مگر در همین آیه ذکر شده لذا بر اساس اینها حین تمسون ارز کنم که مغرب و اشاست حین تصبحون صبح عشیان عصر ان تظهرون ظهره و حین تصبحون خود صبح یخرجو الحی من الميت و یخرجو من الحي. یک دلیلی شما خورای اثبات قیامت قبلا خاندید که الله یبدعو الخلق ثم یعیدو این دلیلی دیگر هست الله تعالى زندرا ایک خارج می کند و تولید می کند من المیت از میت از مرده مستاقاش را قبلا ما خاندیم خیلی زیاد است بارستری مستاقش نطفه هست قطری نطفه که بی جان هست در او حیاتی نیست در او هیچ نوع اثری از زندگی نیست اما از همین نطفه چه ای درست میشه چه حیوان چه انسان چه انسان, چه انسان ارز کنم با کمال چه انسانی از با باهنر نکتاق سمی بسیر گویا لذا یخرج الحی من المیت و مستقای دیگه هم شما خاندید که حیرا زنده را از میت مسلمان را از کافر ابراهیم را از آذر وی خرج المیت من الحي و همچنین از یک بازر که بیزاری هیچ حیاتی نداره نبات را بوت را گیاه را سبزی را که روز بروز غد میکشه روز بروز رشد میکنه روز بروز بزرگ, بزرگ میشه الله درست میکنه وی خرج المیت من الحي و را از حی درست میکنه مرده از زنده درست میکنه همین نطفه که بیجان است از انسان که جاندار است از حیوان که جاندار است یا اینکه اون کافر را که بیجان است از مسلمان که جاندار است کنان را از نو درست میکنه و یا اینکه الله تعالی از جاندار از اونی که حی است مثل زنبور عسل الله تعالی شهد را درست میکنه از کرم ابریشم که زنده است به ظاهر الله عزوجل ابریشم را و حریر را درست میکنه همه اینها مسادق هستند و یحی الارض بعد موتها زمین را هم زنده میکنه بعد از مردنش زمین میبینی سیاهه خشک شده اثری از زندگی نیست همش خشکیه اما باران میاد این زمین زنده میشه بعد از چند روز اصلا احساس میکنه یک فرش سبزی را پان کردند از بسک سبزی از بسک زند، زمین زنده شد کی این زمین را زنده کرد الله و کذار که تخرجون الله میفرمه اینگونه شما از قبرها بیرون کرده میشوید یعنی همونطور که این زمین مرده زنده شد شما انسانهای مرد هم زنده میشید همون طور که زمین با باران زنده شد در حدیث بخاری میاد که باران میاد و به برکت باران انسان تمام زنده میش از قبر بیرون میاد در روز قیامت لذا اینها دلایل اثبات قیامت هستند و بعد از این الله تعالی دلایلی بر اثبات توحید به ما میفرماید چند تا دلیل هست این آثار را نگاه بکن انسان آیات قدرت پروردگار را چرا به خدا و به قدرت پروردگار نمیرسه و من آیاته ان خلقکم من تراب از آیات الله این است که شما آفرید از خاک آفریده خاک ماده بعید انسانه پدرمون آدم از خاک آفریده شد و یا اینکه غیر از ماده بعید قبلا ام این نکتر خدمت شما عرض کردم ماده قریب ما هم از خاک انسان از چی متولد میشه؟ بظاهر انسان از نطفه نطفه از چی درست میشه؟ نطفه از خون خون از چی درست میشه؟ خون از طعام و غذا غذا از چی درست میشه؟ غذا از خاک بس باز هم همین ماده قریب هر انسان همچیه خاک است و بعد در وجود انسان آثار خاک را می بینید هر انسانی تمام مواد زمینی و ماده خاکی درونش هست تو بدن ما سنگ هست بدن سنگ هم داره سنگ خاکه گاهی می بینیم این سنگ در از خونم مسانه جمع میشه گای در کلیه میشه گای در کبد میشه بالاخره جاهای مختلفی هست سفرات میشه بالاخره سنگ هر جا هست در بدن انسان آهن هم هست بدون آهن انسان از بین میره وقتی که آهن بدنش کم باشه برای انسان مشکل میشه در بدن انسان نمک هم هست در بدن انسان غند و شکر هم هست در بدن گچ هم هست یعنی تمام موادی که در خاک هستند اینا الان هم در وجود انسان هستند لذا ان خلقکم من تراب اما این خاک را ببین چه نسبتی دارد ثم اذا انتم بشر تنتشرون شما بشری هستی از گوشت و خون منتشری در زمین هر جا میگردی اصلا با خاک مشابهتی نداری چطور از این خاک الله شما را آفرید و من آیاته خلق لكم من انفسكم از واجا از آیات الهی این هست که اللہ آفرید برای شما از وجود خود شما همسرانی از وجود خود شما یعنی چه یعنی از جنس شما انفسکم ای من جنسکم از جنس شما انسان نیاز به همسر داره مرد هم نیاز به همسر داره زن هم نیاز به همسر داره فرق نمی کنه خدای عزوجل از جنس خود انسان بهش همسری داد جفتی داد دستور نداد خدای تعالی که انسان بره و جفت گیری بکنه با یک دیگه بلا نسبت با حیوان با جنیه با چیزی دیگه بلکه الله تعالی از انسان از خود انسان زوجش را آفرید و در همین صورت است که لتسکنو الیها سکون و آرامش حاصل میشه سکون و آرامش با چی با همسر است با زوجه است و اگر از جنس انسان نبود انسان هیچ وقت سکون و آرامش نداشت همیشه احساس خطر داشت بالفرض اگر یه مخلوق دیگه که مثل انسانها مکلف است جنه اگر به انسان دستور داده می شد که ای انسان برو با جن ازدواج بکن انسان در سکون بود یا در وحشت بود همیشه در وحشت بود هیچ اعتمادی نبود و الان ببینی خدای اززوجل وقتی که همسر را از جنس انسان آفریده از خود انسان آفریده چه سکونی چه آرامشی قبل از ازدواج با هم دیگه بیگانه هستند هیچ احساسی نسبت به هم دیگه ندارند اما بعد از ازدواج الله عزوجل وقتی که این زوجیت را قائم میکند چه احساسی نسبت به هم دیگه دارند چه محبتی که تمام بقیه فامیلو خیشا مندن را فراموش میکند از بس که به هم دیگه وابستگی و دلدادگی دارند این واقعا همون سکونی هست که قرآن تعریف میکنه که بدون هم دیگه بعضی هستن سکته میکنند. لذا الله عزوجل میفرماید می فرماید این لطف پروردگاره این نعمت رب هست که برای شما همسری از جنس شما آفریده لتسکنو الیها تا که شما سکون را بسوی او حاصل کنید آرامش را حاصل بکنید لذا همسران هم باید بدونند که طوری باید با هم دیگه رفتار بکنند هم مرد با زن و هم زن با مرد که هر وقتی که از هم دیگه جدا هستند وقتی که مرد میره بیرون بیرون خانه برای کار میره بازار میره زحمت میکشه یا مسافرت میره از اون طرف که میاد باید شرایطی دو طرف فراهم بکنند که آرامش اصل بشه نه اینکه درگیری بشه نه اینکه مشکلات بیشتر بشه اصل اون همسری که فلسفه زندگی رو متوجه بشه باید به هم دیگه راحت برسانند رنج‌ها رنجهای را دوری از هم دیگه را فراموش بکنند لتاسک الیها وجعل بینکم مودت و رحمه اللہ تعالی بین شما مودت و رحمت را ایجاد کرده این مودت را این عشق را این محبت را اللہ تعالی ایجاد کرده این احساس را به هم دیگه دارند که برای هم دیگه هر نوع ایسار نو هر نوع قربانی هر نوع فداکاری میدند تا زن مریض میشه خدای تعالی چنان موادتی پیدا کرده که شوهر آماده هست تمام زندگی را بده برای درمانش برای اینکه خوب بشه شوهر مریض میشه زن اصلا قلق داره استراب داره شب خواب نداره تا زمانی که شوهرش خدمت نکنه تا زمانی که شوهرش آرامش نبخشه خوابش نمیاد این مودت رو کی ایجاد کرده اگر این مودت و اون رحمتی که قرآن میگه اگر بین همسران ایجاد نمیشد، اصلا زندگی زندگی نمیشد. إذاً الله يفهم هذا لطف ما نهيه هذا ربينيه فراموش نكونيه و جعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون همانا در این آيات هست نشانات هست يك نشانين ها چندين نشانات براي قومي يتفكرون فكر میکنند واغين جاءت تفكرو <تصفيق> جايت تدبر دار قوية خداي عز وجل مارا دستور به چی می ومن به؟ تفکر میده. و من خلق السماوات والارض الله می فرمید از آیات الهی آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف و زبان لحجه شما و اختلاف رنگ ها شما ان في ذالک لآیات للعالمین همانا در این آیات هست برای کسانی که عالم هستند کسانی که علم دارند، درک دارند، متوجه هستند واقعاً این که خدای تعالی مارا مختلف آفریده در این هم چی هست؟ در این هم نکته هست، در این هم سری سر هست انسان متوجه نمیشه اولاً ببینی اختلاف و السنت و الوان چقدر مخلوق خدا داره در این دنیا، سبحان الله میلیاردها ها هستند انسان ها را فقط بگین هیچ دوتا انسانی را نمی بینی که مثل هم باشند حتی از یک مادر متولد شدند مثل هم نیستند با هم دیگه تفاوت های دارند رنگشون فرق میکنه از کنم که اون غالب بندیشون فرق میکنه ستون صدایشون فرق میکنه قد و قوارهشون فرق میکنه حتی دوتا بچه که از یک شکم باشند دو باشند اینا هم با هم دیگه تفاوتی دارند این همه انسان هست اصلا شما نمیبینید تا انسان را که ست در سن مثل هم باشند حتما تفاوت دارند حتما با هم دیگه فرق دارند این تفاوت میدونید فایدهش چیه؟ فایدهش معرفت شناختی اگر نبود هم دیگر را نمی شناختیم. اگر نبود این تفاوت نبود هم دیگر را نمیشد همه انسان ها اگر مثل هم بودند بلا نسبت بلا تشبیه گاهی انسان حیوانات در اختیار در تعدادی مثلا مرغ هستند این همه مثل هم هستند یکی را که انسان نشانی میکنه بعد دوباره میخواد پیداش بکنه تو هم رنگش گم میشه معلوم نیست کدوم لذا اگر انسان ها همه یک جور باشند همه صد در صد مثل هم باشند اون وقت شما نمی شناسی اونی که شما ازش حق میخواستید اونی که به شما احسان کرد یا اونی که به شما ظلم و کرد کدوم یکی بود همه مثل همند. لذا اینه که خدا تعالی تفاوت را ایجاد کرده حتی بین دو برادر که تا میبینی میبینی که این فلان برادر این فلان برادره. ای. این درواغه برای اینه که شناخت باشه اسمت به دیگه معرفت باشه پس خدای تعالی ما را متفاوت آفریده به خاطر اینکه هم دیگر ماسخر بکنیم یکی را بگه تو قدت بلنده تو قدت کوتا تو رنگت سیاه است تو رنگت سفیده تو بینی چینین هست دهانت چنا هست الله تعالی این تفاوت ها را آفریده تا بشه و عرض کردم که جالب انجاز که این همه انسان آفریده شده علا ما ظاهر را می اگر در ظاهر یک وقتی تفاوتی نباشد در درون خدای از و تفاوت های آفریده که سبحان الله. مثلا انسان ها می بینید هر جا انگشت می زنند هر چقدر انسان هست دو تا انسان نمی که اون انگشتشون و آثار و علاماتی که خدا در این انگشت آفرید مثل هم باشند. هر دو تا انسان حتما تفاوت داره. خدای تعالی در چشم‌های انسان تفاوت‌های بعضی کشورها رفتی دیدی دی تو فرودگاهها چشمها را چی میکنند چک میکنند. اونجا انگشت نمیزنند میگن دوربین را نگاه کن. از درون چشم دو تا انسان نیستن که مثل هم باشند. حتما تفاوت‌های از نظر مویررگ ها از نظر اون غالبی کی خدا تعالی گذاشته غالبی دو نفر با ہم دیگه فرق میکنه تنها رنگ نیست در همه اعضای بدن تفاوت سبحان اللہ چه صناعی هست چه خالقی هست چه خلاقی هست که این همه را آفریده هر دو تارا با هم دیگه فرق داده با دیگه تا اینکه این شناخت حاصل بشه معرفت حاصل بشه از اینها اگر انسان به خدا نرسد از چی میخط برسه واقعا این خالق چنان خالقی هست؟ که انسان پمی برد فتبارک الله احسن الخالقین لذا الله می فرماید و من آیاته خلق السماوات والارض از آیات الله آفرینش آسمان ها و زمین و اختلاف زبان و الوان و اختلاف الزوان زبانها و الرنگها شما ان في ذلك لآيات للعالمين در همي انها آيات براي كساني اهل علم هستان كساني ك قدري شناخ دارا قدري معرفت دارا آياته منامكم بالليل و همچنين از آيات رب العالمين اين از شما در شب مي و نهار و همچنین در روز و ابتقاوكم و طلب شما فضل خدا را در روز فضل خدا را می طلبید کار می کنید نانی برای خودتون پیدا می کنید شب راحت بی خوابید آیا به این نظام شب روز فکر کردیم چقدر خدای تعالی برای راحت من و تو برای آسایش ما این, این نظام را پیدا کرده دوازده ساعت همیش روز میشه تا خوب بگردی خوب کسب کنی خوب حاصل بکنی درآمد داشته باشی رزق حلال داشته باشی بعد به همین مقدار شب میشه تا کارهای شخصیت را انجام بدی سکون داشته باشی آرامش داشته باشی لذا اینها اِنَّ فِي ذَلِكَ لَآیَاتٍ لِقَوْمِ يَسْمَعُونَ در همه اینها آیات هست، نشانات هست. نشانات بر توحید نشانات بر خالقیت برای قومی که یسمعون گوش میکنه دلائل توحید را استماع میکنه توجه میکنه به دلائل الهی و من آیاته یوریکم البرق خوفا و طمعا همچنین از آیات الهی هست این که شما را نشان میده برق را نشان میده به وقت باران چطور راد و برق میزنه؟ این رادبار که میزنه هم برای انسان برای انسان دو حالت پیدا میشه. از یک طرف انسان میترسه، از یک طرف انسان هم که باران میاد، خوف و وطامع. و ينزل من السماء ماء نازل میفرماد از آسمان آب فیوحی به الارض بعد موتها زندمی کند به وسیله اون زمین را بعد از مردنش. این نفی ذالک لآیات لقومی عقلون در همه اینها آیات و نشانات است برای قومی که عقل می کند عقل دارد اللہ تعالی مارا همه جا به تعقل و تدبر و فکر کردن و اندیشیدن دعوت می ده یعنی گویا ما باید از عقل خودمون کار بگیریم که چطور الله عز و نظام زیبای اگر این نظام نبود اگر باران نمی بارید همین سال هات می شدن یا نه قطعا و جعلنا من الماء کل شین حی تنها چیزی که سبب حیات آب آب نماشه تمامه چرا در کوراتی دیگه کسی زندگی نمیکنه چندین ساله که میرند فزانه واردها میگه کجا آب است در هیچ کره ای ازین کوراتی دیگه آب نیست بگیرد زمین به همین خاطر الله تعالی زمین در قابل سکونت قرار داده. اینجا میتونه انسان وجود داشته دیگه جا آب نیست لذا اینجا تا آب کم میشه نفسمون تنگ میشه پریشان میشیم وقتی که آب نباشه کوچ میکنیم میریم جایی که آب باشه لذا آیا اے انسان به این نعمت پروردگار فکر کرده این فی ذلک الایات لقوم یاقلون الله انتظار داره که از عقل کار بگیرید بیاندیشید فکر کنید وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِ از آیات پروردگار این است کہ برپا شده آسمان و آسمان و زمین به امر الله این آسمان سبحان الله یعنی نظام دنیا آسمان و زمین یعنی نظام دنیا نظام دنیا برپا شده به امر خدا ببینید دن نظام دنیا ما بظاہر بینیم ولی خدای از و چنان نظامی را گذاشته سبحان اللہ کسانی که تحقیقات دارن در این زمین آت چیزهایی می نویستن که گای انسان اصلا نمی تونه متوجه بشه انسان گای هنگ می کنه به قول مردم که اللہ تعالی چه نظام منظمی درست کرده ببین این همه ستاره ها و سیاره ها هستن هزاران میلیون ها میلیارد ها هستن این سیارات و ستاره زمین یک کوچلوی در میان اونها است الله تعالی در همه اینها اون قدرت جذب گذاشته که هر یکی از اینها یک قدرت جذبی دارد این قدرت جذب باعث شده که اینها فاصله شون ازم دیگه چی بشه حفظ بشه. اگر اون نباشد فاصله ستاره ها از هم دیگه حفظ نشه اینها با هم دیگه برخورد میکنن تمام عالم در هم برهم میشه لذا این فاصله که ایجاد شده نظام داره در حال ادامه هست در حال هم بقیه ستاره ها سیاره ها در اون مداری که دارند حرکت خودشون را ادامه میدند کار خودشون را میکنن زمین در مدار خودش خورشید در مدار خودش ماه در مدار خودش هر یکی به دلیل همون جاذبه ای که در فاصلهش هسته یک روزی میاد الله تعالی این جاذبه رزبی از اینها میگیره از, از, می از خورشید میگیره از ماه میگیره از زمین میگیره اون وقت انفجارات شروع میشه اینا با همدیگه برخورد میکنند اون وقت تمام دنیا در ہم بر ہم میشه لذا اللہ تعالیٰ الان که دنیا را قائم کرده دنیا را برپا کرده این خاطر همین کشش و جذب و صلاحیت هایی که اللہ تعالیٰ در این سیارات نهاده لذا از آیات الہی و از آثار قدرت الله است ان تقوم السماء و الارض نظام دنیا قائم است آسمان قائم از زمین به امر خدا و بعد یک روزی می رسد که این به پایان برسه شما انسانها را خدا فرا می خاند همه شما تو شکم زمین خوابید ثم اذا دعاکم دعوتا من الارض سپس شما را فرا می خاند یک فرا خواندنی یک دعوتی یک بار می گے. بیاید انسان ها اون سور اسرافیل دمیده میشه یک سوتی میزنه یک فوتی که میزنه همه ازا انتم تخرجون در این هنگام همه شما خارج میشید از قبور و میاید سوی پروردگار و له من فی السماوات والارض فقط و فقط برای الله است تمام اون موجوداتی که در آسمان ها و زمین است هر موجودی. ذو القول مثل فرشته جن انسان همه در اختیار یالاست کل له قانتون همه و همه برای الله است اکبرای الله تابع است توعا و کرهان خاصه یا ناخاصه به खुशी یا ناخوشی همه تابع پروردگار هستند و هو الذی یبدأ الخلق ثم یعید و هو اهون علیه دوباره اللہ تعالی دلیل میاره بر اثبات قیامت میگه اے انسان فکر کن ذاتی که از ابتدا پیدا کرده اون ذات دوباره هم میتونے پیدا کنه. اون ذات آجز نیست و بلکہ گرچه برای خدا کاری نداره هر دو یکی از اما از نظر ما بعدا درست کردن از اول درست کردنش آسان تره نه از نگاه ما انسان ها شما ببینید در همین دنیا کسانی که اهل تولید هستند اهل صنعت و اهل حرفه هستند یه چیزی را درست میکنه اولش کمی مشکله تا فرمولش به دست بیاد تا بالاخره کارخانه بزنه درستش بکنه تمام مواد برابر باشه اول مشکل درست بکنه اما بعدا یک بار که درست شد دوباره درست کردنش آسانه یک دکمه میزنه همه درست میشنند. لذا از نظر ما از نگاه ما اینه که ابتدا درست کردن مشکل از این که بعدن درست بکنیم الله می فرمایت که ابتدا شما را بدون الگو درست کرد دوباره چرا نتونه شما را درست کنه بر اساس عقیده شما و هو اهون علی دوباره درست کردن بر الله چی هست آسان تر گرچه از نظر الله با یک کن همه درست میشه اما الله تعالی بر اساس برداشت ما سخن میفرماید. و هوال ذلی ابدال خلق. الله آن ذاتی هست که از ابتداء آفرید، ثم یعیده سپس شمارا برمی میگرداند. و هو آهوانو علیه آسان تر است بر اولیانی اعاده آسان تر است. وله المثل الأعلى في السماوات والأرض فقط و فقط برای اللہ صفت بالا مسئل الاعلی یعنی چھے صفت بالا مراد صفت بالا عبد الله ابن عباس رضی اللہ عنہما که رئیس مفسران است ایشیمی فرمی صفت والا یعنی لا الہ الا الله یعنی در تمام آسمان و زمین ثبت شده و ثابت شده که لا الہ الا الله هیچ معبود لائق پرستش نیست بجز الله همه جا ثبت شده همه میدونند فرشته میدونه جن میدونه آسمان میدونه زمین میدونه اما انسان جاهل به غیر از الله دیگران را معبود قرار میده برای الله تنها سجد نمیکنه برای غیر خدا سجده میکنه تنها برای خدا طواف نمیکنه برای غیر خدا تواف میکنه تنها از خدا حاجت نمیخواد از غیر خدا میخواد این انسان جاهل این انسان مشرک بإن نتيجة نرسيدي أما تمام عالم رسيدي وله المثل الأعلى في السماوات والأرض أن مجاهد المثل الأعلى قول لا إله إلا الله تفسير بحر المهيت وله الوصف بالوحدانية يعني در وحدانية صفات خدا وحدانية إن صفات فقط مالئوها وهو العزيز الحكيم ان ذات غالبا ان ذات غالب هست بر اعاده که دوباره انسان ها را خلق بکند اما کارهای او همراه با حکمت است. دارب لكم. ببینید اینها تمام تعریف خدا و تمام این دلایل برای چی است؟ برای این است که ما به این نتیجه برسیم خدا شریک ندارد کسی دیگه مثل خدا نیست که لایق سجد باشه لایق دعا خواستن باشه لایق نظر نیاز باشه لایق یغی و رکوب همه برای خداست حالا الله تعالی مثال بیان می‌فرات چقدر رب مهربان می‌خواد من و تو انسان متوجب باشیم ما حقیقت توحید را بفهمیم اما بعضی از انسان ها که از قرآن بدور هستند نمی فهمند الله می فرماید درب الکوم مثلا من انفسکم الله بیان میکنه برای شما مثال از خودتان از وجود خودتان که از اینجا شما متوجه میشه که شرک اگر فکر کنی به بطلان شرک متوجه میشید اون م... مثالی که از وجودتان هستیه حلکم حل من ماملکت ایمانکم من شرکا فی ما رزقناکم میفرماید آیا از غلام های شما ماملکت ایمانکم برده را میگند غلام را میگند کنیز را میگند ببینید در گذشته هر کسی می رفت غلامی به پول می خرید، غلام می رفتیم به 10000 درهم می خریدی، این می شد غلام زر خریده تو، می آوردی دیگه تمام خدمات خونه را انجام میداد، نظافت را انجام میداد، گوسفندان را نگهداری می کرد، زمین را نگهداری می کرد، خرید را انجام میداد، از صبح تا شام کار می کرد شما یک لقمه زور بهش میدادی یک لقمه شب بهش میدادی اون دیگه غیر از خدمت شما کاری دیگه نداشت خب الان الله تعالی میفرماید که غلامی شماست برده شماست زر خریدی شماست خب آیا شما راضی میشید که او شریک شما بشه یعنی با شما برابر بشه شما ده میلیارد سرمایه دارید او باشه شما 100 هکتار زمین دارید 50 مالی او باشه شما هر چی داری نصفش مالی او باشه هر آیا کسی از شما راضی میشه هیچ کسی برای بردش چنین چیزی راضی نمیشه لذا الله میفرمه وقتی شما برای عبید خودتون برای غلام های خودتون برای برده های خودتون چنین چیزی راضی نمیشید چطور خدا راضی بشه بنده ای را که خودش پیدا کرده هنوز این غلام از نظر جنس هم جنس شما هم شما انسان هم او انسان هم شما فرزند آدم هم اون فرزند آدم اما اونی, اونی که خدا درست میکنه علیه عزو از جنس خدا نیست خدا خالقه او مخلوقه خدا راضقه او مرزوقه خدا معبوده او آبده. حالا آیا خدای عزوجل چطور راضی بشه که یک مخلوقی رو بیاری با خودش برابر قرار بده خدا غیبدان اون رو هم غیبدان قرار بده خدا مدبر و متصرف اون رو هم مدبر و متصرف قرار بده خدای عزوجل قدرت داره اون رو هم قدرتمند قرار بده چطور شما برای بردهای خودتون راضی نیستید چرا این حق را برای خدا قرار میدی که خدا اونها رو مثل خودش قرار داده از اختیارات و تصرفات خودش داده با خود شریک ساخته لذا الله این مثال را بیان میکنه که انسان بفهمد الله می فرماید هل لکم مما ملکت ايمانکم من شرکا فيما رزقناکم آیه برای شما هست از آنچه که مالک شدید یعنی از غلام های شما من شرکا آیا شریکی هست بر شما فی ما نکن در اون چیزی که ما به شما دادیم او مالک مال خود ما شما نیست ما به شما دادیم آیا در این مال او را شریک میکنید چنا شریک که فا انتم فی سواء شما در اون باو برابر باشید چنا شریکی که تخافونهم کخیفتکم انفسکم که از او به ترسید از او به ترسید مثل این که از همدیگه دیگه می ترسید که خیفتکم انفسکم مثل ترسیدن شما از خودتون ببینید دو تا شریک دو تا شریک که هر دو آزاد باشند از همدیگه میترسند می ترسند خیلی هستید شما شراکت داری کردید تو بازار دو شریک هستی مثلا سرمایه گذاشتید مثلا در زمین با هم شریک هستی در تجارت گاگا گاه انسان میترسه یک وقت شریک با ما خیانت نکنه یک وقت همه چیز را به نام خودش زده زمین و ملک و باغ و منزل یک وقت بالا نکشه این احساس خطر میشه در شرکا هست الله تعالی می فرماید این آیا شما برای خدا چینی چیزی را روا می دارید که شریکی داشته باشد و ازو احساسی خطر بکنم مثل خوف شما از خودتون کذالک نفصل ال آیات لقوم یعقلون اللہ می فرماید خداون آیات را روشن می کند برای شما توضیح میده ده اینگونه توضیح میده. اما این توضیح برای قومی هست که یعقلون قول قومی که عقل داشته باشد قول م... قومی که درک داشته باشد اونی که عقل ندارد ببینید انسان یا از عقل خودش پیروی می کند یا از خواهشات و احساسات خودش هر کسی از عقل کار بگیرد این به نتیجه می رسد اما هر کسی که دنبال احساسات باشه هوای نفس باشه خواهشات باشه تعصبات باشه تعصب هم یک نوع خواهشی هست احساسی هست این انسان هیچ وقتی بنتیجه نمیرسه به توحید نمیرسه به واقعیت و حقیقت نمیرسه لذا الله می فرماید بل تبع الذين ظلموا اهواءهم بغیر علم یعنی با این مثال ہی جای شک و شبهه باقی نیست سر هدایت نمیشنی مشرکین بلکه واقعیت اینی که پیروی کردند کسانی که ظلم کردند از سی پیروی کرده اهواهم از خواهشات خودشون بغیر علم بدون علم یعنی از روی جهل فمن يهدي من اضل الله هر کسی که خدا او را گمراه کرده دیگه کی میتونه اون را هدایت کنه و ما لهم من ناصرین برای اونها هیچ ناصری و هیچ یاوری نیست لذا خدای عزوجل اینجا با دلایلی که شما در رکوع قبل خوندید و با مثالی که در این رکوع خاندید همه مسائل را شفاف و واضح بیان فرمود که قدرت مال الله، است قدرت در زمین و آسمان قدرت در این کائنات قدرت در وجود شما همه چیز در اختیار الله، است مال الله، است مال کسی دیگه از مخلوقات نیست و در غالب مثالی هم اثبات فرمود که هیچ مخلوقی را خدا شریک خودش قرار نداده نه فرشتهی را نه نبی را نه ولی را نه را وقتی که قرار نداده لذا کسانی که قرار می دهند از خواهشات خودشون پیروی میکنند بنابراین این اکنون الله تعالی به من و شما دستور میده که شما خودتون را ذاتتون را چهرهتون را خالصتا برای الله قرار بدید یعنی مال خدا باشید شما مال خدا باشید یعنی همه طاعات و عبادات و کرنش شما برای اللہ باشد پس برپا بدار ذات خودت را خود خودت را وجودت را برای دین، اون دینی که حنیف است حنیف قبلا خواندیم یعنی یک سو از ادیانی دیگر حنیف یعنی در اون شرک نباشد حنیف یک سوی بمانه اینه که در اون شرک نباشد ارن ابراهیم اکانا اونجا در باری ابراہیم حنیفاً وماکان من المشرکین ابراہیم حنیف بود یعنی چه مشرک نبود فطرت الله اللتی فطر الناس علیها یعنی الزمو فطرت الله ای بندگان من اون فطرتی که خدا بر اون فطرت انسانها را آفریده اون فطرت را لازم بگیرید ببینی خدای عزوجل در همه انسانها فطرت توحید را و فطرت این را که انسان خدا را یگانه بداند و در مقابل خدا تسلیم بشه سر تعظیم فرود بیاورد این فطرت را خدایتالا در هر انسانی گذاشته در سرشت هر انسانی گذاشته بعدن اسبابی مثل تربیت نادرست پدر و مادر مثل نفس پرستی، مرس، حرص، تمع و تمام خواهشات و غیره فطرت انسان را عوض میکنه اصل فطرت همه ما انسان ها بر چی هست بر توحید بر یکتاپرستی رسول الله صلی الله علیه وسلم بر اساس همین فرمود کل مولود یولد علی الفطره یا علی فطرت لسان اسلام هر بچه که متولد میشه در وجود او الله تعالی فطرت تسلیم شدن در مقابل خودش را قرار داده یعنی انسان وقتی که بر این فطرت عمل میکنه میبینه آرامش پیدا میکنه. هر انسانی که برای خدا سجد میکنه، عبادت میکنه، این انسان راحت میشه چرا؟ چون که به اون فطرت خودش عمل میکنه. اما انسانی که بر فطرت نیست، میره گناه میکنه، معصیت میکنه، قتل میکنه، نهنجاری میکنه. این انسان هیچ وقت آرامش نداره. شما در بلادی که عبادت نیست در بلادی که ظلم هست ستم هست در بلادی که نافرمانی است مثل بلاد کفر بلاد اروپا شما آمار بگیرید شما بری تحقیق بکنید ببینید واقعا انسان ها آرامش دارند مال دارند سرمایه دارند امکاناتشون بیسته چنان در رفاه هستند که با یک دکمه تمامی کارای خودشون را انجام میدند اما خواب نمی روند قرص خواب می خورند آمار خودکشیشون بیش از حد بالاست به خاطر اینکه اینها بر اون دین فطرت نیستن در فطرت هر انسانی الله عزوجل تسلیم شدن در مقابل خودش را گذاشته به همین خاطر وقتی که شما بر دین فطرت عمل میکنید روی سنگ سرت را بذاری فورا خواب میری نیاز به قرص خواب هم نیست نیاز به رخت خواب و اسپیلتش هم نیست چرا؟ به خاطر اینکه بر فطرت وقتی که باشی آرامش داری. پس رب العالمین میفرماید ای انسان اون فطرت را لازم بگیر فطرت الله التي فطر الناس علیها یعنی لازم بگیر فطرت خدا را اون فطرتی که الله تعالی بر مردم را بر اون فطرت آفریده به همین خاطر ببینی کسانی که در مسیر اشتباه هستند گای برش و مشکلی مشکل پیش میاد گای برایش مشکل پیش میاد فورا به طرف خدا رجوع میکنه حتی حتی اون کسی که با خدا دیگران را هم صدا میزنه قران میگه دیگه خدایان را صدا میزنه الیهای باطل را صدا میزنه اما وقتی برایش مشکل بزرگی پیش میاد اون خدایان را فراموش میکنه فقط خدا را صدا میزنه فقط از الله استمداد میگیره چون این انسان خود خود وقتی که برو فشار بیاد بر همون فطرت میاد خیلی از افراد هستن که خدا رسنان قبول ندارند وقتی که در حالت خوشی هستن نظریه کمونیستی و دیدگاه الحادی دارند اما وقتی که برایش مشکلی پیش میاد بیاد خدا میفتند شما دیدید این سران سران حکومت ها خصوص کسانی که قدرت دارند اصلا هیچ وقت از خدا حرف نمی زنند اما وقتی که فشار بیاد من همیشه همون خاطره ای که رئیس جمهور سابق امریکا همیشه اسمش را فراموش میکنن کی بود ترامپ وقتی که اوج کرونا شد و روز هزاران نفر میمرد آخر اعلام کرد گفت یک شنبه همه برید کلیسا دعا کنید یعنی وقتی فشار بیاد می بیند خود به خود اون فطرت که باید به خدا رجوع کرد اون فطرت خود به خود احساسی را در وجود انسان پدید می میکنه چرا در وقت دیگه از خدا نام نمی برند الله تعالی در هر انسانی یک فطرتی گذاشته لذا انسان هست که بعدن یا بخاطر تربیت نادرست پدر و مادر مثلا پدر و مادر بر دین شرک هستند بر دین کفر هستند یا بخاطر حرص و تمع یا بخاطر هوای نفس و خواهشات یا بخاطر تعصبات و احساسات انسان از اون فطرت خارج میشه الله میفرماید که بر اون فطرت بمانید فطرت الله یعنی دین خدا ببینید خداوند هر زمانی که دین را میفرستد دین را مطابق فطرت میفرستد دین را مطابق اون چیزی که انسان را بر اون سرشت خلق کرده میفرستد الان در زمان ما در زمان های گذشته دین یهودیت بر اساس فطرت بوده دین مسیحیت بر اساس فطرت مردم اون زمان بوده اما در آخر زمان اون دین ها منسوخ شدن دین اسلام بر اساس فطرت است یعنی کسی به دین اسلام عمل بکند همین نمازهای یومیه را بخانات زکات بده عج بره روزه بگیره اینا تمام الله تعالی سیستم را طوری قرار داده که این انسان خود به خود بر همون فطرت گامزن است لذا الله می فرماید که لا تبدیل لخلق الله لا تبدیل لخلق الله به ظاهر خبر است ولی به معنی انشاء به معنی نهی هست. یعنی خلق خدا را تغییر ندهید خلق خدا یعنی چه؟ یعنی فطرت خدا فطرت مخلوق خداست اون را تغییر ندی خدای تعالی فطرت شما را بر توحید گذاشته شما تغییر ندی نرو غیر الله عبادت نکن خدای عز و جل فطرت شما را بر اساس چی گذاشته؟ در مقابل یک خدا تسلیم شدن گذاشته نرو به این در اون در نزن خدای از زوجل فترتی شما را بر اساس سجد کردن روزانه او را کرننش کردن او را عبادت کردن گذاشته لذا سرکشی و تمرد نکن تکبر نکن از عبادت او عبا نکن پشت نده لا تبدیل خلق الله معش اینه که این فطرتی که خدا آفریدی این را تغییر ندهید ای بندگان لذا الله می فرماید. لا تبدیل لخلق الله ذالک الدین القیم این دین دین استوار است یعنی قابل نسخ نیست این فطرتی که الله برای شما تاین کرده این دیگه تا من منسوخ نمیشه القیم مانش امینه استوار پابر جا دیگه دینی نمیاد که این را منسوخ بکنه و دینی نمیاد که این را تغییر بده این تا قیامت هست ولیکن اکثر الناس لا لاعلمون اما اکثر مردم نمیدانند تدبر نمیکنه نمیاندیشند فکر نمیکنهن منیبین الی این منیبین الی اصل هالس از فطرت الله یعنی بر اون فطرت خدا باشید در حالی که رجوع کنید به سوی الله منیبین الی به سوی الله انابت کنید واتقوا ببین اینجا چند تا اصل خدا بیان کرده اصول هشت گانه میگن به این هشتا اگر ما عمل بکنیم دنیا و آخرت ما آباد است اولین فترت الله بر اون فطرت یعنی بر دین توحیدی باشیم دوم منیبینا الی فقط و فقط به سوی الله رجوع کنیم به سوی غیر الله رجوع نکنیم سوم واتقوا فقط از خدا بترسید تقوا را پیشه کنید اصل چارم و اقیم السلاة نماز را برپاب دارید اصل پنجم ولا لا تکونو من المشرکین از مشرکان نباشید یعنی نماز سیه نماز اینه که سجده برای خدا پس از غیر برای غیر خدا سجده نکنید نماز اینه در نماز دعا از خدا ولا لا تکونو من المشرکین یعنی از غیر خدا نخواهید از غیر خدا کمک نطلبید یا فلان انصرنی یا فلان خذ بیدی یا فلان ادریکنی اینا چیه از خدا بخوا ولا تكونوا من المشرکین یعنی نماز وقتی میخانی تو نماز دعا هست نیایش هست خواستن هست ولا تكونوا من المشرکین از مشرکین نباشید کیان مشرکین من الذين فرقوا دينهم انهای که دینشان را تکه تکه کردند دین را در دین تفریق ایجاد کردن و کانو شیعه و آنها دسته دسته شدن گروه گروه شدن شیعه یعنی دسته گروه ببینید اینجا خدای طالع داره میگه که یعنی دین فطرت دین توحید بوده بعدن انسان ها آمدن یک تا پرستی را بجاید که یک خدا را عبادت کنن بعضی آمدن دو تا خدا مثل زرتشتی یا مجوسیه گفتن خدای خیر خدای شر یکی یزدان یکی اهرمن دوتا خدا بعض مسیحیان آمدن تا خدا خدا ایسا روح القدس بعض گروه آمدن بیشتر خدا را، خدایان بیشتری مثلا خدا را هم عبادت میکنه خورشید را هم عبادت میکنه ماه را هم عبادت میکنه ستاره را هم عبادت میکنه چار تا شدن بعضی خدایان بیشتری مشرکین و سی ست خدا داشتند بعضی بیشتر بیشتری مثل هندوها چندین میلیون خدا دارند هر چیزی عجیبی که ببینه میگه این خداست درخت عجیبی میگه خداست چرای می خدا نباشه چارزار سال عمر کرده معلوم میشه تو این اثر خدایی هست یک انسانی که عجیب آفریده شده با بقیه فرم میکنه میگه این اثر خدایی است تو این هست لذا هر چیزی که عجیب باشه اون خداست لذا از این جهت انسانها چیکار کردند از یک خدا رفتن به دو خدا به سه خدا به چند خدا خورشید آتش مجسمه بودا این بود اون بود این قبر اون سنگ هر چیزی را بعد از اون چیکار کردند عبادت کردند الله می‌فرماید که بر این خدایان مختلف کسانی که اینها را ایجاد کردن اینها در واقع دین را تکه تکه کردن این نیست که اول مثلا شرک یکی از مذاهب اصلی بوده بعدن مردم به فکر افتادن بیا این فقط یک خدا را عبادت کنیم توحید و یک تاپرستی را بعدن ایجاد کردن نه از اول توحید و یک تاپرستی بوده بعدن آمدن گروهی و چیکار کردن شرک را ایجاد کردند لذا الله می می‌فرماد: منالذین فرقو دینهم نباشید از آنان که دین خودشان را تک تک کردند و کانوشیان گروه گروه شدن كل حزبی بما لدیم فرخون باوجود بطلان شرک هر گروهی آنچه که پیشش از خوشحاله، غافرا آقای داری با داد می‌کنه خوشحاله. جلوی سنجی نشسته و کورنیش میکنه خوشحال فکر میکنه من ناجی هستم یکی دیگه نشسته و آتش را عبادت میکنه خوشحال خل و فریحون اما الله تعالی میفرماید همین انسان که غیر الله پرست و هر چیز پرست همه چیز پرست وقتی که برایش مشکلی پیش میاد فقط خدا رسیدا میذنه اون وقت خود به خود بر اون فطرت میاد نه اون فطرتی که در وجود انسان گذاشته شده نهاده شده و اذا مسنا صدر هرگاه به انسان ضرری میرسد آسیبی میرسد دعو ربهم صدا میزنند ربشان را منیبی الیه در حالی که به الله رجوع میکنند فقط خدا را خدا یا دیگه اینجا خدایان ما کاری نمیتونه میکنن نمیتو ثم اذا اذاقهم منه رحمه الله میفرماسه پس وقتی که میچشانت الله اونها را از جانب خودش رحمتی اذا فريق منهم بربهم یشرکون در این هنگام یک گروه از آنها نسبت به ربشان دوباره شریک می گیرند دوباره شریک میگیرند فراموش میکنن خدا چطور نجاست نشوند لیکفورو بما هم این شریک گرفتن در واقع کفران نعمت خدا است لیکفورو تا که کفران نعمت کنند کفران چی بکنند بما اتاینهم اون چی که ما به اونها دادی لذا الله تعالی بانه افراد میفرماید فتمتعو چند روزی استفاده کنید تو دنیا خوش ضرونییت بهره بگیرید از متاع دنیا و از کالای دنیا استفاده کنید فصوف تعلمون ان قریب شما سرانجام این کار را میدونید سرانجام شرک را میدونید که خدای تعالی به چه مصیبتی و به چه عذابی شما را گرفتار میکنه این تهدید است اما انزلنا علیهم سلطانا خدا میفرما ای من ما بر آنها دلیلی نازل کردیم برای شرکشون که فهوا یتکلمو بمع کانو بهی یشکون که اون دلیل و اون سلطان بیت سخن بگویت به اونچه که با خدا شریک میگیرند یعنی دلیلی دارن که اون دلیل شرکشون را اثبات کنند و اذا اذقن الناس رحمت فرحو بها الله میفرم ببین انسان چگونه زود آواز میشه هرگاه ما بیچشانیم انسان را رحمتی خوشحال میشه و مغرور میشه و این توصف هم اما هر وقتی که به او و سیح برسه به ما قدمت ع به سبب عمل کردش اضا هم یقنتون در این هنگام انسانها ناامید می شود اولم یا اینجا خدای تعالی دلیل دیگری بیان فرموده بر اثبات ببینی خدای تعالی چگونه بندگان خودش را متفاوت آفریده. بندگان را رزق متفاوت می ده ولم یرو آیا نمی بین ان الله یبسط الرزق لمن جئی شاو و یقدر خداوند فراخ می کند رزق را برای هر کسی که بخاد و تنگ می کند فی ذلک لآیات اللی یؤمنون در این آیات و نشانات برای قومی که ایمان بیارم ما فکر نمی گاهی به این نکته ما دستور زخروف خواندیم حکمتش را چرا خدا به بعضی داده به بعضی نداده بعضی اهل الحاد و اهل کف اعتراض میکنن میگن این چی بی‌انصافی است یکی این قدر داره که اصلا نمیتونه مالش را حساب بکنه یکی دیگه لقمه نان شبش را نداره این بی‌عدالتی هست الله تعالی می فرماید نا خدا تعالی بعضی را زیاد داده بعضی را کم داده این یکی از دلائل قدرتی ببینید اگر ما بهش فکر بکنیم همونطور که در سوره زخرف خاندیم واقعا حکمتی توش هست اون حکمت اینه که این نظام دنیا چی میشه؟ این نظام دنیا ادامه پیدا میکنه بر برهم نمیشه اگر همه انسان ها یک سان بودند نظام به هم میخورد. مثلا شما حساب بکنید که همه ما تمام انسانها میلیاردر می بودیم همه داشتیم هیچ نیازی نداشتیم اون وقت کی میاد میامد برای ما ساخت و ساز می‌کرد کارگری کرد کی میامد برای ما کشاورزی کرد کی میامد گوسفندان ما را نگهداری بکنه کی آمد خدمات را انجام بده کی آمد همین زباله شهر ما را جمع بکنه کی میامد نظافت بکنه هر یکی را می گفتی می گفتی من خودم میلیاردر من نیازی ندارم آیا نظام خراب می شد یا نمی شد آیا مختل می شد یا نمی شد اللہ عزواجل بندگان را طوری آفریده که بندگان نیازمندی هم دیگه هستن اونی که سرمایدار است، اونی که میلیاردر هست, هست اون نیاز به کار و خدمت من فقیر داره من تا وقتی برایش کار نکنم او نمیتونه زندگی بکنه من باید برایش ساخت و ساز بکنم من باید برایش کشاورزی بکنم من باید برایش چوبانی بکنم من باید برایش خدماتش رو انجام بدم اون نیاز من داره من نیاز پولی او دارم چون ما را نیاز نیاز من دی هم دیگه قرار داده ما مشکل او را حل میکونه او مشکل ما را حل میکنه لذا اگر این نباشد تمام کارهای خدماتی تعطیل میشه نمیدونم جوشکاری تعطیل میشه نجاری تعطیل میشه در سازی تعطیل میشه ساخت و ساز تعطیل میشه کارخانه ها تعطیل میشه kimia دوباره تو کارخانه کار بکنه وقتی که همه برابر باشند لذا اینکه خدای زواجل یکی را غنی آفریده یکی را فقیر یکی را دارا یکی را نادار تو این حکمت است این فلسفه هست و یکی دیگر از فلسفه هایش اینه که ما را امتحان می ما را امتحان می کنے اونی که داره باید خرد بکنه برای که نداره خدا یک حدی حد تعیین کرده هزاران فلسفه و حکمت در این از که خدا تعالی انسانها را متفاوت آفریده. لذا اللہ می فرماید اولم یرو ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاؤ و یقدر آیا نمی بیناد که همانا اللہ فراخ کرد رزق را برای کسی که بخواد و تنگ می کند ان في ذالک لقومی لقوم یؤمنون همانا در این آیات اس برای قومی کی ایمان می آورند فآت ذا القربا حقه پس حالا که تو داری بده بخیشاوند حق او را بده هر خیشاوندی حق دار معلوم میشه غیر از زن و بچه خیشاوندانی که مستمند هستند هم بر ما حق دارند اینجا خدا می حقش را بده والمسکینه و و همچنین بمسکین حقش را بده و ابن السبیل مسافر حقش را بده یکی از حکمتهای که یکی داره یکی نداره همین امتحان است همین آزمایش هست و یکی دیگه ببینید. اگر همه داشته باشند هیچکس دزدی نمیکنه. هیچکس مال یکک دیگر را بالا نمیکششه. هیچ کس بر دیگری زور نمیگه چون نیازی نداره. خب اون وقت این دنیا دار امتحان نمیشه. این دنیا دار امتحان نمیشه دنیا داره امتحان هست که نداری چیکار میکنی؟ از راه حلال میری درمیاری از راه حرام از راه دزدی و غصب یا نه از راه کسب و کار نداری یا اونی که ندارت با اون چطور برخط به صورت ربوی بهش وام میدی یا بدون ربوی در آینده اشار، اشاره میکنه لذا همه این که دارا بودن و ندارا بودن از کردم هزارا نکته و حکمت و فلسفه تویش هست ذلك خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ این بہترس برای انهایی کی اراده دارن رضای خدا را وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ انها رستگاران هستند وَمَا آتَيْتُم مِن رِبَن می اون که شما می از ربا ربا یعنی الربا. على ربا من صورت ربا میدهی بمردم لیربو فی اموال الناس تا مال مردم اضافه بشه فلا یربو عند الله نزد خدا این اضافه نمیشه یعنی انسان اگر به کسی بده به صورت رباوی بده مالش اضافه نمیشه دلش خوشه به طرف میگه من بهت 100 میلیون موام میدم ولی سمای دیگه 150 میلیون می میگیرم دلش خوشی که 150 اضافه شد اضافه نشده این پنجره خدا نابود میکنه نه نا اینکه پنجره نابود میکنه صدش را هم خدا نابود میکنه فلا یربو عند الله و ما تو من زکات تریدون وجه الله اون که شما دادید از زکات یعنی به صورت پاکی مالتون صدق دادید زکات دادید اراده رضای خدا کردید فا که هم المضعفون این چند برابر میشه این خداواده کرده شما ببینی کسانی که صدقه میدهند از صدقه دادن دا مالشون کم نمیشه بعضی افراد را ما میشنیم خیلی سخی هستند چون میدن به همه میدن به خیشاوندش میده به فقیر میده به یتیم میده شما دیدید که مالش کم بشه روز روز مالش بیشتر میشه لذا الله می فرماید فاولائک هم المضعفون اینها کسانی هستند که چند برابر میشه مالشون برکت میاد تو مال اینها ببینید پس معلوم میشه که کسی به کسی پول می ده مال می ده به قصد رضای خدا بده سیدنا علی رضی الله تعالی عنہ میگوید که اگر کسی مالی به کسی میده از خالی نیست یک لوجه الله هم ترک در اینجا گفته برای رضای خدا این برایش چی هست برایش چند برابر میشه برایش مضاعف میشه برایش اجر دوم به کسی میده به خاطر ریا میده تعریف مردم میده این برایش بلای میشه وبای میشه هیچ ثوابی برایش نداره شما در سوره بقره خامدید سوم به کسی چیزی میده به نیت عوض میده من میدم تا اون هم به من بده این جایز است نه ثوابی داره نه هیچ به کسی میده هدفت اینه که من اینو میدم فردا اونم به من یک چیزی بده این وقتی که بنیت نیت عوض میده پس ارز کنم که ثوابی نداره البته مستحسن اینه مستحب اینه بهتر اینه اون کسی که بهش هدیه داده میشه اون هم سعی بکنه आवाज هدیه بیو بده رسول الله صلی الله علیه و سلم کسی بهش هدیه میداد هدیه را قبول میکرد کان رسول الله صلی الله علیه و سلم يقبل الهديه و يسيب عليه بعض اوازش رحم میداد سعی میکرد به اون طرفم یه چیزی بده لذا پس تنها اونی که به درد میخوره اونی که لوجه الله باشه برای رضای خدا نه انتظار عوض داشته باش نه انتظار تعریف داشته باش نه انتظار خدمت اون طرف را داشته باش فقط خدا راضی باشه بس الله اللذی خلقکم اینجا خداوند عز و دلیل دیگری را بر توحید بیان فرمود الله اون ذاتی هست که شما را آفرید ثم مرزقكم سپس الله تعالى را رزق داد، ثم یومیتكم سپس شمار می میرند، موت میده، ثم یوحیكم دوباره حیات و زندگی میده. آیا از این خدایانی که شما عبادت می کنید فریاد می زنید یا فلان یا فلان یا فلان, یا فلان، کسی هست که این کار را بکند؟ آیا کسی هست از اینها خالق شما باشد؟ کسی هست که موت شما به دستی او باشد، کسی هست که بعد از موت شما را زنده بکند، وقتی که نیست، چرا غیر خدا را فریاد میزنی، چرا غیر خدا را صدا میزنی، چرا برای غیر خدا گزفن می کشی، اللہ می فرماید، الله اللذی خلقکم، اللہ آن ذاتی هست که شما را آفرید، ثم رزقکم، بعد از آفریدن رزق به شما داد، ثمّ يومیتكم بعد از اون شماره می میرند. ثمّ يحييكم بعد از اون شماره حیات میده. هل من شركاءكم من يفعل من ذلكم من شيء. آیا الشريكانی که شما اونها عبادت ابداد می کنید و اونها شريك خدا می دانید من يفعل ذا من ذلكم من شيء. آیا کسی هست که انجام بد از این کارها چیزی را قطعا سبحانه یعنی الله از سنی شریک پاک است لذا در این سوره سه چیز خاندیم یک خالق فقط الله است دو رازق فقط الله است سه موت و حیات هم به دست الله است اینها باعث میشه که انسان فقط خدا را عبادت بکنه اگر غیر خدا کسی هست که هم خالق باشه هم رازق باشه هم موت و حیات به دستش باشه اس پیامبران از فرشتگان، از جن، از انس، از اولیاء، از ائمه، پس اون را عبادت کنید اگر نیست پس غیر خدا را عبادت نکنید سبحانه و تعالی عما یشریکون پاک از اون ذات و برطرس از اون چیزی که مردم شریک او میگیرند ظهر الفساد و فی البر و البحر بما کسبت عید الناس الله تعالی جهت تخویف دنیوی به امن فرماید چرا تمام دنیا را فساد گرفته به خاطر اینکه مردم عمل کردشون بد است به خاطر اینکه مردم عمل کردشون بد است ظاهر الفساد في البر البحر ظاهر شد فساد در تمام خشکی و دریا هر جا فساد هر جا فتنه هر جا مصیبت چرا بما کسبت اید الناس بسبب کسب دست مردم یعنی اعمال کفری و شرکی مردم سبب فساد شده لیو ذیق بعض عملو لعلهم یارجیون خدا همه جا گرفتاری آورده تا بچ شاند به مردم بعضی اون کارهایی که عمل کردن یعنی نتیجه کارهایشون رو که عمل کردن نتیجه اونها را بیش شاند چرا خدا در این دنیا می چرا در این دنیا خدا گوشمالی می ده چرا عذاب می بندگان خودش را خدا مهربانه لعلهم یرجعون تا به سوی خدا ببینید عذاب دنیا به خاطر بازگشت اگر کسی برش مصیبت میاد هدف خدا اینه که برگرده به طرف من دیگه به عذاب همیشگی آخرت گرفتار نشه پس چه بسا مشکلات در دنیا برای ما خیر هست برای ما نفع هست و حال الله تعالی دعوت میده میفرماید که شما بریم بگردید بریم بگردید که احوال دیگران چطوره اونایی که خدا را نفرمانی کردند خدا معاخزشون کرد اونایی که شرک کردند اونایی که با خدا دیگران را عبادت کردند برید وضعیت اونها را ببینید همین مشرکین مکه در بدر خدا چطور در هم برهمشون کرد کمرشون را شکست فرعون را ببین خدا چطور غرقش کرد قوم عاد را ببین خدا چطور طوفان برش آورد قوم سمود را ببین خدا چطور با یک سیعه و با یک جیغ جبریل جگرشون را پاره کرد لذا الله می فرما اینا همه آثارشون هست هر کسی بره هنوز جنازه فرعون است برو ببین عبرت بگیر قل سیرو فی الارض بگو سیر کنی در زمین فانظروا ببینید کیف کان عاقبت الذین من قبل چگونه است انجام کسانی که قبل از این بودند بودند مشکلی مشکلینات چی بود الله می فرماید کان اکثرهم مشرکین اکثر آنها مشرک بودند چون که مشرک بودند الله به عذاب گرفتارشان کرد لذا تو ای انسان چیکار کن فاقم وجهکال دین القیم تراس بکنتیه لاترا برای دین استوار برای دین توحید یعنی yani تو خالص برای خدا باش تو مثل اونها شرک نکن تو مثل اونها غیر الله را نه سجده کن نه کرنش کن نه دعا کن از غیر الله بخا نه برای غیر الله نظر نیاز کن همه عبادت هار برای خدا انجام بده وجه وجهک لدین القیم من قبل ان یعطی الله می فرماید قبل زینکی بیاید اون روز سخت بیاید قبل اون تو خدا را عبادت کن من قبل ان یعطی یوم لا مرد له من الله قبل از اینکه بیاید، اون روزی که بازگشتی نیست از اون روز از طرف خدا از اون روز انسان برگرده به دنیا دیگه بازگشتی نیست. هرچی انسان ذری میکنه یا یک فرصتی دیگه به من بده. یک بار دیگه منو به دنیا ببر ببین من چطور تو رو عبادت میکنم. ببین چطور از شرک بیزار میشم الله میگه ندیری شده. لذا خدا اینجا در قرآ میگه که ما قبل از اینکه به اون روز بررسیم همین جا تجدید نظر بکنیم. من قبل این یتییه یوم الله مرد دله من الله قبل از اینکه بیاید روزی که باز گشتی برای اون روز نیست از جانب الله یو معین درون در اون روز مردم متفرق میشند. دسته دسته میشند دستی ای به جهنم برده میشه. دستی به سوی بر اعراف قرار میگیرند دستایی به بهشت برده میشوند. اینا چ گروههایی هستند. اللهم فرمای من کفر فعليه کفرو، ہر کسی کفر کنت بر اوس و بال کفرش و من عمل صالحا ہر کسی عمل صالح انجام بده فل انفسهم يمهدون یعنی برای خودشون آمادگی میکنند لام لام انتفاس برای نفس برای نفع نفسش برای نفع خودش اون داره آمادگی میکنه لیت زیال الذين انلام لام عاقبته الله میفرماد عاقبت و انجام این میشه که الله جزای نیک میده کسانی را که ایمان آوردن و عمل صالح انجام داده دا از فضلش ببینید ایمان داری عمل صالح انجام دادی اما خدا کجای نیک میده؟ را از فضل خودش اگر تو بگیم من 50 سال سجده کردم 500 سال عبادت کردم این 500 سال عبادتی در مقابل یک چشمی که خدا به هم چیزی نیست هر ما عبادت میکنیم وظیفه ماست خدا بهشت را در مقابل این عبادت ما نمیده این عبادت حق خداست بهشت را بما میده من فضله از فضل خودش به همین خاطر رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فرمود از خدا فضلش را بید از خدا لطف و فضلش را بخواهید لذا تاکه جزای نیک میده اللہ کسانی رکی ایمان آوردند و عمل صالح انجام دادند در مقابل این ایمان و عمل صالح اینکه وظیفش بوده حقش بوده من فضله از فضل خودش انهو لا يحب الكافرین همانا الله دوس ندارد کافرین رکسانی که ایمان نیاورند نه تن کامل ساله انجام ندهند. و من آیاتی ای یرسل ریاح مبشرات لیذیق کمی رحمت دلیل دیگری در این سوره از کردم همیش دلایل عقلی هست، دلیل دیگری بر اثبات توحید و قدرت خدا، الله می فرمه از آیات پروردگار این هست، این یرسل ریاح بادها را می فرستد، مبشرات این بادها مجددهنده هستند، بعد این می وزد نسیمی می, می وزد مجده میده. چرا مسجد میاد پشت سرش ابر را داره میاره باران را میاره لیذیقکم من رحمته تا کہ الله به شما بچشاند رحمت خودش را رحمت رب به باراناد ولتجری الفلک تا بامر تا کہ کشتی به امر خدا جاری بشد تو دریا تبتغو من فضله تا شما فضل خدا را بطلبید ولعلکم تشکرون تا شما بنده شاکر باشید ببینید این بعد که میوزه چندی فایده داره این باد که میوزت فوایدش هم در خشکی هست هم در دریا هست هم در بره هم در بحره چندی فواید بعد که اینجا ذکر نشده خدای عزواجل اون درشت درشتها را ذکر میکنه این ریزها را و کچکها را ذکر نمیکنه خیلی از فواید همین باد که میوزت گاهی ما عصبانی میشیم این باد حشرات را از میبره بشه هر از بین میبره مگس هر از بین میبره دیگه هر که ما را آزار میده و این بعد چه تغییراتی در هوا و در تنفس ایجاد میکنه الله ازدو شما ببینید بی تو یک خانه شما هستید برای اینکه تنفس خوبی داشته باشید تهویه میزنید تا بالاخره هوا تازه بشه لیسا الله عز و جل این باد را که در تمام دنیا این را مسخر کرده این قدر داره که ما یک دهم این فواید را هنوز نمی فهمیم. اما بعضی که تر و درشتر هستند، الله ذکر می فرماید مثلا این باد بیاد باران را باران کی بیاد سبحان الله، تمام زمین شاد میشه هم انسان خوشحاله هم حیوان خوشحاله هم درخت و سبزی خوشحاله لذا اللہ می فرماید این یرسل الریاح مبشرات بعدها مجدد مجددهند می فرستد ولیو ذیقكم من رحمت تاکه بشما بچشاند از رحمت خداش بعد از باران باران کی می رحمت خدا هر جا سبز، هر جا آباد هست شیر فراوانه روغن فراوانه گندم ها، برنج ها، دیمه، تمام کشاورزی، تمام مردم شاد استند، تمام مردم خوشحال استند، رزق فراوان، گندم فراوان، برنج فراوان، حبوبات فراوان، میوجات فراوان، لذا، این یکی از است، ولی تجری کو بی امر، کشتی به امری اجاره بشه، در گذشته کشتی ها، کشتی های بادبانی بود، مطوری نبود که مثل امروز مطور را روشن بکنن کشتی را دیگه تو دریا می بعد بانها را باز بی کرد این بعد آهسته آهسته کشتی را به همون مسیر می برد امروز هم بعد تو دریا وقتی که آرام می وزد به همون جهت موافق کشتی ولو اینکه با مطور میره کشتی را راحت می اما اگر فرض کنی بعد برعکس بی وزد. قدرت کشتی کاسته میشه یا گایی زیاد بوزند موج میاد کشتی را از بین میبره هنوز هم ولو اینکه بادبانی نیست هنوز هم برای اهل دریا این باد کله خیر و منافع داره ولی تب تغو من فضله تاکه از فضل پروردگار در دریا به طلبی بینیم تمام درامدها بیشتر درامدها تو دریاست ارز کنم که تو دریا کشتی ها مسافر کشی میکنن بار تمام حمل و نقل بین المللی به بی وسیله کشتی هاست تمام کار و بار دنیا بیشتر در دریا ها انجام میده میگه هر کشوری که دریا داره سروتمنده لذا لتبتغوا من فضله فضل خدا رو به طلبید همه این رو خدا میده و لعکم تشکرون تا که شما بنده شاکری باشید ناشاکر نباشید شاکر بودن اینه که فقط در مقابله الله تاعت و عبادت داشته باشی ولقد ارسلنا من قبلك رسلا الى قومهم فجاؤوهم بالبينات الله تعالی اینجا بشارت برای مؤمنین و تخویف برای مشرکین الله میفرما ما قبل السمايه محمد صلی الله علیه وسلم سلم رسولی را فرستادیم پیامبرانی را فرستادیم الى قومهم بسوی قومشان هم بالبینات این رسول پیش انها با دلائل آمدند با موجزات آمدند از پیش خدا پیام آوردند اما گروهی کفر کرد گروهی راه شرک را پیش گرفت گفت نه ما خدایان یعنی خودمون را ترک نمی کنیم الله می فرماید فانتقمنا من الذين اجرموا ما انتقام گرفتیم از مجرمین از کسانی که جرم کردن شرک کردن و کان حقا علینا نصر المؤمنین حق است بر ما بر ما حق است این حق وجوبی نیست می نویسید تفضلان خدا فضل می فرماید. بر اوهده خودش قرار داده نصر المؤمنین نصرت مؤمنان را که خدا مؤمنان را یاری می کند بعض هم همون دلائل گذشته دلیل بعد به صورت کامل تر الله الذي يرسل الرياح الله ازاتی اس که بعد ہر امی فرشتہ فتثير الصحابا این بادها تحریک میکنه ابرها را فیبسطه فی في السما اینارا پهن میکنه در آسمان کیف یشعبها همان صورت که اللہ میخاد ویجعل کسفا این با این ابرهارتی که تکمی کنند یک بخشی از ابرهارت بره مشرق زمین یکی بره مغرب این طرف هم خودم میخواد باران بده شمال هم میخواد باران بده لذا اینها را تقسیم میکنند فیبسطه فی السما فیج ویجعله کسفا الله نال تیک کمی کند یعنی بخش بخش می کند فطر الوضق یخرج من خلال بینی قطره باران را که خارج میش از وسط ابر ها فاذا اصاب به من یشاء من عباده هر وقتی که برسانت ان را بهر یکی از بندگانش اذا هم یستبشرون در این هنگام میبینی انسانها خوشحال میشن شاد میشن و این کانو من قبل گرچه بودن قبل از کی باران بیاد من قبل ان یونزل قبل زین باران نازل بشه لمبلسین قبل از این امید بودن قبلا ناومید بودن یهو باران آمد تمام جب باران شد یک شب و یک روز باران شد هفت شب و هفت روز باران شد چقدر انسان ها میشن لذا الله میفرمه بعد از این که باران میدم آثار رحمت من بر رو زمین ببین همین زمین خشکیده را احساس میکنی یک چمن سبز شده یک فرش سبزی پان کردن همه جا آباده سر سبز و الله می فرماید فانظر الی آثار رحمت الله ببین آثار رحمت الله را کیف یحیی الارض بعد موتها چگونه زنده کرد زنده میکنه زمین را بعد از مردنش اللہ میفرماید همون ذاتی که این زمین را زنده میکنه اِنَّ ذَلِكَ لَمُحِي الموتا، همین ذات زنده میکنه را. یعنی قیاس بکن درک بکنه انسان این زمین مرده کی زنده کرد؟ تا یک ماه پیش اصلا یک بوته نمیدیدی تو زمین یک سبزی نمیدیدی الان که باران آمده همه جا سبز شده کی بود این زمین را زنده کرد این زمین را الله میتونه زنده بکنه انسان مرده را نمیتونه زنده بکنه قطعا زنده میکنه و هو علی کل شیء قدیر زنده کردن به جای خود الله به هر چیزی قادر هست به هر چیزی تواناست ولا این ارسلنا ریحا فراوهم مصفرا لظلوا من بعده یکفرون الله میفرمايت ببینید گاهی سبزی هست نه باغ هست، کشت هست. خدا بعدی میفرسته اون بعد اولی نیست این بعد بعدی ویرانگر است، بعد خراب کننده هست. اون سبزی سبز را زرد میکنه، اون درخت سبز را خشک میکنه. بعد انسان ها نامید نا میشن، ناشاکی میکنند. بیایید خدا هر چی میتونه بکنه. لذا الله میفرماید ولی ارسلنا ریحان اگر ما بفرستیم بعدی را فرعوه و مصفرن او را زرد ببینند یعنی تمام سبز جاتش را لظلو من بعدیه یک فرون میگردم بعد از اون کفران میکنند ناسپاسی میکنند لذا الله میفرماید اینجا تسلی برای پیغمبر است شما در این سوره تقریبا دوازده تا دلیل عقلی خاندید دوازده تا دلیل که این هر یکی از این دلائل برای تفهیم مسئله توحید کافی است این دلائل بیان میشد بعضم مشرکین حالیشون نمیشد بعضم دست از خدایانشون بر نمی داشتند این مسئله رسول الله صلی الله علیه و سلم را بسیار غمگین می کرد بسیار ناراحت می کرد جوش می زد آن حضرت الله تعالی در این جا تسلی می ده پیغمبرش را که ای حبیب من ای پیغمبر من این کفار مثل مردها ها هستند قبلا هم خدمت شما عرض کردم خدا تعالی کفار را به مرده تشبیه داده و مؤمنین را به زنده تشبیه داده کسی که ایمان داره مثل کسی است که زنده است کسی که ایمان نداره مثل کسی است که مرده است لذا با مرده میشه حرف زد مرده را میشه که یک مطلبی به اونها بفهمانی نمیشه پس الله تعالی می فرماید اینها هم مثل مرده هستن. فانک لا تسمع الموتا تو نمی شنوانی مرده ها را و تشبیه داده به انسانی که کر باشه ناشنوا باشه و تشبیه داده به انسانی که کور باشه نبینا باشه ببینید اگر کر باشه روبروی شما باشه شما با او صحبت بکن شما میگه آب شما میگه نان او از لبهایت میخونه شما چی داری میگی لبخانی میکنه اما اگر کر پشتش به طرف شما باشه شما هر چی و متوجه میشه لذا الله میفرم مثال این مثل اون کریز که پشتش به شماست این دو مثال سوامی مثال و ما انت به هادی العمیه شما نمیتونی کور را, را نمائی کنی کوری هست میگه که چطور برم شما میگه اون میله را میبینی اون کور را میبینی و اون بینه میتونی راه نمائیش بکنی نمیتونی پس الله تعالی این کفار را تشبیف داده به این ستا هم به مرده هم به کر هم به کور خب قبلا همین بحث سمای موتار زمنی هست اینجا گرچی آیه برای این نیامده خدمت شما عرض کردم که آیا مردهایی که در قبرها هستن هستند میشنوند یا نمیشنوند یک سری احادیثی هست که بعضی میگویند میشنوند مثلا رسول الله صلی الله علیه و سلم وقتی که کشته شدگان بدر کشته شدند ابو جهل بیچاره کشته شد عتبه کشته شد شیبه کشته شد امیه کشته شد الله الله عز و جل دستور داد که رسول الله را که با اینها صحبت بکن همه را رسول الله دستور داد در یک چاله ای انداختند هفتاد نفر از کشت هایشون را رسول الله گفت که آیا اون وعده ای که خدا کرده بود به اون وعده رسیدید آیا دیدید که همونطور که من گفتم شد هل وجدتم ما وعد ربکم حقا اون چیزی که وعده کرده بود رب شما اون را حق یافتید عمر فاروق گفت یا رسول الله اینا مرده هستن اینا چطور میشنوه شما داری با این ها صحبت میکنی رسول الله فرمود اینها مثل شما میشنوند خب حالا از این حدیث معلوم میشه که مرده میشنوه از این آیه معلوم میشه که مرده نمیشنوه ام المومنین عایشه رضی الله تعالی انها این گونه توجیه کردن عایشه فرمودند که اونجا صدای رسول الله را خداون معجزتن به اونها شنواند تا بیشتر اونا حسرت بخورند بیشتر زجر بکشند بیشتر بسوزند لذا اون مجزای رسول الله. اصل این همونطور که قبلا در درس گذشته از کردم در صورتله اصل اینه که برای مردها سماعی نیست شنیدنی نیست چون که اسم نف شده اسم که نفش شده است نفش, نفش اما جایی که استثنا باشه بله جایی که خدا بخواد بشنواند استثناءت ها موجود دارد در حدیث دیگری عزیزی ادولی کرد که می آید وقتی که شما حدیث قرعین نعال معروف است شما مردها را دفن می کنید هنوز صدای کفش شما را می که منکر و نکیر میاد. این حدیث را بیشتر اینطور توجیه می کنند که این حدیث کنایه از این هست که یعنی فورا منکر و نکیر میاد. هنوز شما اونجا هستید. اگر میشنید مثلا صدای کفش شما نمیشنید هنوز شما هستید که منکرونکیر میاد بعضی این حدیث را میگن نه مرده وقتی که تازه مرده هنوز آثاری در بدنش هست آثار حیات مثلا هنوز خون هست هنوز بدنش تازه هست شما میبینید یک روز دو روز گذاشته هنوز موهاش نریخته هنوز گوشتش نریخته هنوز بدنش خراب نشده چون این آثار همون زندگی و همون روح گذاشته است کم کم فاصله میگیره کم میشه لذا روح تازه رفته هنوز میشنود بعضی این طور توجیه کردند اما بعدا سمائی نیست علا ای الله اللہ تعالی اینجا به پیغمبرش میگه فَإِنَّكَ لَا تُصْمِعُ الْمَوْتَى شما نمی توانی بشنوانی مردهارا ولا تسمعو سمت دعا نمی شنوانی کر را صدا زدن را ازا ولو مدبرین وقتی که برگردن پشت دهنده شما او نمی شنود وما انتا بهادی العمی عن ضلالتهم نیستی شما راه نمائی کور کور ارز کنم عن ضلالتهم بر اساس گم راهیش یا بر اساس راه گم کردنش نمیتونی تونی شما بی اون راه را نشان بیدی چون نمی این ان تسمعو الا من یؤمنو بی آیاتنا مگر کسی که ایمان بی آیات ما داشته باشند فهم مسلمون پس اونها در مقابل آیات ما تسلیم میشن اللہو الَّذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعض الضعف قوة این دلیل اقلی سیزده هم است الله می فرماید ای انسان خودت را ببین انسان خودت را مطالعه بکن چه مراحیلی بر تو گذشتی این مراحیل رکی ورده. اول خدا تو را آفرید ضعف در بود وجودت بود چنان ضعف بود که نمی بشینی نمی چیز را به دست بگیری نمی غذایی بخوری خلاصه الله عز و جل کم کم رشد داد قوی تر شدی آخر راه میرفتیم می یوفتا دی چون نمیتونیستی راه بری کم کم یاد گرفتی بعدا قوی شدی قوی شدی تا یک جوان تنومند و قوی هیکلی شدی جوان قوی شدی اما بعد از ضعف قوت خدا بی قوی شدی بعد از قوت دوباره ضعف انسان وقتی که جوانی راه می میکند پیر میشه دوباره مثل تفلی میشه دوباره بھی همون حال اول برمی گرده روز بروز ضعیفتر آخر مثل همون بچه که نمیتونست را بره آخر نمیتونست را بره دست و پاش قدرت نداره حرکت نداره تا اینکی این جهان را ترک میکنه پس انسان به حالت اول برمی گرده این احوال متفاوت را کیا کی ایجاد میکنه؟ الله از که ایجاد میکنه. بعضی این طور برداشت کرده و استدلال کردند همون طور که به حالت اول برگشتی انسان که بمیرت دوباره به حالت اول برمی گرده حالت اول چی بود؟ زند شدن لذا اللہ می فرماید اللہ اللذی خلقکم من ضعف اللہ هنزاتی است که را آفرید ضعف آفرید ثم جعل من بعد الضعف قوة سپس بعد ضعف الله تعالی قوت آفرید ثم جعل من بعد قوة صفت بعد قوة وبعد جواني ضعفا وشعبا هم ضعف و هم پيري هر دور يخلق ما يشاء الله خلق ميكون الهرچ بخاد وهو العليم القدير ان ذات ذاتي هست هر چيز رميداند و قادر هست ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون حال الله تعالی تخویف اخروی بیان می فرماید اللہ می فرماید وقتی که قیامت برپا بشه چنان انسان وحشت زده چنان مرعوب که تمام زندگی هشتات ساله، 90 ساله، ست ساله دنیا برایش به اندازه یک ساعتی معلوم میشه. قسم کسیم می مجرمان مجرمان رضی بی پرسند شما چقدر در دنیا بودیم سوگان به خدا یک ساعت بیشتر نبودیم یعنی اینقدر زندگی دنیا برایش معمولی معلوم میشه حتی با هم دیگه صحبت میکنن تازه وقتی که حشر میشه در سور مومنون شما خان با هم دیگه که ما از قبرهات بلند بشیم از هم دیگه میپرسیم قال کم لبستون فی عدد سنین در زمین چند سال ماندی؟ اون دیگری هرچی فکر میکنه قالو لبسنا یوما او بعضا یک روز بودیم یا نصف روز دقیق میگه یادم نیست یک روز بودیم یا نصف روزور فسعل الاد دین اونای که حساب کردن بپرسید از فرشته فرشته, فرشته حساب کردن از اونا بپرسیم محچقت بودیم فرشته میگه که شما اشتاس سال بودید تو دنیا نوست سال بودی یادت نیست این و 80 سال, سال به اندازه یک روز نیم روز معلوم میشه لذا مجرم سوگند میخوره میگه من یک ساعت بودم الله میفرماید و یوم تقوم و یقسم المجرمون روزی که قیامت برپا میشه یقسم المجرمون مجرمها سوگند میخورند ما لبثو غیر ساعه نماندن غیر از یک ساعت كذلك كانوا يوفكون ان گنہ اللہ می فرمائے یوفكون انہ برگردانده میشدند از حق وقال الذين اوتوا العلم والايمان میگو ان کسانی کے علم و ایمان داده یعنی اهل شریعت اهل دین اهل توحید انہا لقد لبستم في كتاب الله الى يوم البعث البته بعضی معتقید این قبر است میگن در قبر یک ساعت باندیم اونها میگن که شما در کتاب خدا یعنی طبق تقدیر الهی در قبر و برزخ ماندید اله یوم البعث تا روز زنده شدن فهازا یوم البعث امروز روز باس است انسان ها بندگان خدا الان روز بعث است باس یعنی بلند شدن از قبر ولیکنکم كنتم لا تعلمون شما بودید که نمیدانستید لذا اللہ میفرماید فیومئذن لا ينفعو الذین ظلموا معذرتهم ان روز روزی هست که نف نمیدهد بکسانی که ظلم کردن معذرت خواهیشان ولا هم یستعتبون ونبی انها فرصت معذرت خواهی داده میشه یستعتبون یعنی به اونها مهلت داده نمیشه که بیان معذرت خواهی بکنه دیگه اونجا جای معذرت خواهی نیست معذرت خواهی همین دنیاست همین شباست، همین ماه رمضان همین شب قدره اینجا انسان میتونه معذرت خواهی بکنه اونجا الله میفرما ولا هم یستعتبون یعنی به اونها فرصت معذرت خواهی داده نمیشه ولقد ضربنا للناس في هذا قرآن من كل مثل اللہ می فرماید ما بیان کردیم برای مردم در این قرآن هر نو مثال بیان کردیم هر موضوعی عمده را بیان کردیم ولا ان جئتهم اما ان قوم ان قد اناد زد دارد ای پیغمبر من اگر پیش اونها بیاوری هر آیه ای را هر نشانی را بی ایت لا حتما حتما خواهن گفت کسانی که کفر کردن این انتم الا مبتلون نیستیم مگه شما بر مسیر باطل چرا به شما اینطور میگن خدا دلشون را مهر جباریت زده خدا این هر از هدایت و ایمان محروم کرده کذالک یطبع الله على قلوب الذین لا يعلمون این گونه مور زده خدا بر دل کسانی که لا یعلمون، ای لا يعلمون التوحید. کسانی که توحید را نمی فهمند درک نمی کنند خدا مور زده اونه را از ایمان محروم کرده لذا شما چیکار کن ای پیامبر فصبر صبر کن سبر کن تحمل کن این وعد الله حق وعده الهی حق است وعده الهی حق است نصرت میاد یاری خدا میاد فتح و زفر میاد موفقیت میاد ولا لا يستخفنک الذین لا يقنون یعنی شما را وادار به خفت و سبوکی نکنند سبوکی چی؟ اجله. کسانی که یقین ندارند کسانی که ایمان ندارند به خدا یقین ندارند به آخرت یقین ندارند اونا باعث نشن که شما اجله کنید اجله در چی؟ بعضی گفتند اجله فی دعای علیهن بالعذاب که خدا اینها را عذاب بده نه اینطور اجله نکن سب کن بعضی گفتن عجله یعنی داد و فریاد کردن بی صبری کردن صبر کن تو نهضت خودت را ادامه بده تبلیغ خودت را ادامه بده و روز به روز بیشتر بفهمان اونی که ایمان مقدرش باشه اونی که هدایت در تقدیرش باشه خدا اونه هدایت میکنه به وسیله شما پس شما را سبک نکند یعنی تعجیل در به وادر نکند کسانی که لا یقینون یقین ندارن.